خدای مهربان سلام بار خاطراتمون خالی از فسانه نیست چه بسیار شبهایی که گوش جان به افسانه ها و داستان های دلنشین پدر بزرگها و مادر ها سپردیم و در فسون محصور کننده افسانه‌ها، ها خواب هزار رنگ دیدیم افسانهایی که ما رو با تمام سادگیهاش به سفرهای رنگین و خیالانگیز و دنیاهای پر رمز و راز به دنبال خودش می و از این رهگذر حقایقی رو برای تک تک ما روشن می کرد. در برامه ازار افسان خواهیم راهی سرزمین آلمان بشیم و افسانهای رو از مجموع افثانه های برادران گریم برای شما نقل کنیم نام این افسانه افسانه استخان آباسخان برگرفته از کتاب جهان افسانه با ترجمه از هرموز ریاهی شهین تبا و, و بهزاد برکته امیدوارم که از شنیدن این افسانه لذت ببرید روزی روزگاری در سرزمین آلمان یک گراز وحشی برای جان مردم شده بود مزاره و کشتزارها رو ویران می کرد، گاوها و گوسفندها رو می کشد و شکم هر کسی رو که سر راهش قرار می گرفت، پاره می کرد این گراز وحشی آرامش و آسایش رو از مردم سرزمین آلمان گرفته بود مردم از دست حملات این گراز وحشی به پادشاه پناه بردند تا شاید پادشا چاری بیاندیشه و اونها رو از دست این حیوان وحشی نجات بده پادشا چند روزی رو از مردم سرزمینش محلت خواست و یه روز جارچی در شهر اعلام کردند که مردم به گوش پادشا دستور داده هرکس کس بتواند مردم را از بلای گراز وحشی نجات دهد پاداش خوبی به او خواهد داد این خبر به سرعت در شهر پیچید اما این حیوان وحشی اینقدر از این و, و قوی بود که هیچکس کس نکرد به جنگلی که گراز وحشی در اونجا زندگی میکنه نزدیک بشه و بالاخره پادشاه اعلام کرد که تنها دخترش رو به عقد کسی درمیاره میاره که گراز وحشی رو به دام بندازه یا اونو بکشه در گوشه از سرزمین آلمان مرد فقیری زندگی میکرد که دو تا پسر داشت و چون این خبر به گوششون رسید فورا آمادگی خودشون رو برای انجام دادن این کار خطرناک اعلام کردن بله این دو برادر تصمیم گرفتن گراز وحشی رو به دام بندازن یا اونو بکشن برادر بزرگتر که زیرک و هیلگر بود از سر غرور حاضر به این کار شد و برادر کوچکتر که معصوم و خوشخل بود از سر مهربونی پدر که از تصمیم دوتا فرزندش آگاه شد با نگرانی اونها گفت ازیزانم باید خیلی مواظب خودتون باشین و بعد هوشیارانه ادامه داد و گفت باید احتیاط کنین و از دو طرف مقابل وارد جنگل بشین اینجوری حتما گراز وحشی رو شکار میکنین یا اونو از پا در میارین. پسرا حرف پدرشونو پذیرفتن و آماده شدن تا صبح زود قبل از طلو آفتاب راه جنگل رو در پیچ بگ. برادر کوچکتر که کمی در جنگل پیش رفت در میونه راه به مرد کتولهی برخورد کرد که چهرهی مهربونی داشت و روی تکه سنگی نشسته بود. مرد کوتوله نیزیگ سیاهی در دست داشت و با دیدن برادر کوچکتر لبخندی زده گفت توی وسایر جرعه آب پیدا میشه؟ برادر کوچکتر با خوشرویی سری تکون داد و بعد همغمه آبش رو به طرف مرد کوتوله دراز کرد. مرد کوتوله بعد از نوشیدن آب از برادر کچکتر تشکر کرد و گفت خیلی معلومه پسر خوشخلبی هستی بیا بیا این نیزه رو بگیر مال تو و بعد نیزه سیاهش رو به طرف برادر کوچکتر دراز کرد برادر کوچیکتر با تردید نیزه رو از مرد کتوله گرفت و اونو با دقت برانداز کرد مرد کتوله گفت با این نیزه میتونی با جسارت و شجاعت تموم به گراز وشی حمله کنی و بعد با اطمینان خاطر ادامه داد مطمئن باش، هیچ آسیبی به تو نمیرسه برادر کوچکتر از مرد کتوله تشکر کرد نیزه رو روی دوشش گذاشت و با قدم هاگی محکم به راهش ادامه داد برادر کوچکتر هنوز راه زیادی نرفته بود که یه دفعه در نیمه های جنگل چشمش به گراز وحشی افتاد از وحشت سر جاش ایستاد نمیدونست باید چیکار کنه چون حسابی قافل گیر شده بود گراز وحشی به طرف برادر کوچکتر یورش برد برادر کوچکتر به خودش اومد و به گراز وحشی امان نداد و با یه حرکت تند و سریع با نیزه سیاهش به گراز وحشی حمله کرد گراز وحشی که کورش کرده بود چنان با شدت خودش رو به نیزه کوبید که شکمش پاره شد برادر کوچکتر با ناباوری و خوشحالی لاشی گراز وحشی رو روی دوشش گرفت و هرچی زودتر به قصر پادشاه بره و مردم سرزمینش رو قرغ شاد اما از برادر بزرگتر براتون بگم. برادر بزرگتر وقتی در نیم راه جنگل برادر کوچکتر رو دید که لاشه گراز وحشی رو روی دوشش گرفته و از جنگل بیرون میاد بدخواهی و حسادت وجودش رو پر کرد و با حیله و فریب به پیشواز برادر رفت و با خوشحالی و لحنی به ظاهر دل سوزان گفت برادر عزیزم بیا بیا یکم خستگی از تم بیرون کن و تازه کن. و به توندی زرف آبی به برادرش داده و گفت بگی بگی حتما خیلی تشنهی برادر کوچکتر سری تکن داد و آب رو نوشید و به برادرش گفت خواهی بهتر هرچی زودتر به قصر پادشاه برم برادر بزرگتر به گفت نه نه نه نه نه نه نه تو باید به خونه بری و قطعی استراحت کنی کشتن گراز وحشی کار آسونی نبود تو باید حسابی استراحت کنی برادر کوچیکتر که گمان بد به برادرش نمیبرد پذیرفت و توی راه تمام ماجراهای کشت شدن گراز وحشی رو برای برادر بزرگترش تعریف کرد و برای برادرش گفت که چطور اون مرد کتوله نیزه سیاهش رو به اون داد و اون با همون نیزه تونست گراز وحشی رو بکشه برادر بزرگتر که با دقت به حرفهای برادر کوچکتر گوش میداد با خوشحالی گفت آفرین، آفرین بر تو برادر، آفرین واقعا این که کشتن اون گراز وحشی شجاعت میخواست من مطمئنم که این کار فقط از اقده تو برمیومد اومد، نه کسی دیگه ای یکی دو ساعت که گذشت، برادر کوچکتر از جا بلند شد و گفت دیگه داره تیر میشه، باید هرچی زودتر به قصر پادشاه برم برادر بزرگتر چاپروسانه گفت نه, نه نه نه نه نه خستگی هنوز از سر و صورتت میباره چه ای داری و اونقدر گفت و گفت تا برادر کوچیکتر پذیرفت که تا فردا استراحت کنه و بعد لاشه گراز وحشی رو به قصر پادشاه ببره فردا صبح زود برادر کچیتر از خواب بیدار شد و داد که بره به طرف غصر پادشاه برادر بزرگتر که زودتر از اون بیدار شده بود و به ساعت صبحونه رو حاضر کرده بود با لحنی به ظاهر دلسوزانه گفت برادر عزیز من صبح خیلی زود بیدار شدم و برات صبحونه آماده کردم میترسیدم بدون صبحونه ضعف بری و حالت بد بشه بیا بیا چند ای بخور تو با هم به قصر پادشاه بریم برادرها بعد از خوردن صبحونه لاوشی گراز رو برداشتن و به طرف قصر پادشاه برافتادن در بین راه به پلی رسیدن برادر بزرگتر برادر کوچکتر رو جلو فرستاد و وقتی به وسط پل رسیدن از پشت سر چنان ضربه محکمی به برادر کوچکتر زد که برادر بیچاره به پایین پل سقوط کرد و همون دم جان سپرد برادر بزرگتر بلافاصله جسد برادرش رو زیر پل دفن کرد لاشه گراز رو برداشت و با غرور تمام به نزد شاه برد و وانمود کرد که خودش حیوان وحشی رو کشته. پادشاه هم با خوشحالی طبق قولی که داده بود تنها دخترش رو به عقد برادر بزرگتر در آورد و تمام شهر غرق در شادی و شرف شد. ادتی که گذشت خبری از برادر کوچکتر نشد و برادر بزرگتر به لحنی به ظاهر ناراحت و غمگین به همه میگفت حتما برادر بیچاره من رو اون گراز وحشی از پادر رو برده. آه گراز لعنتی خوب شد که انتقام خون برادرم رو گرفتم و تو رو نابود کردم آه برادر برادر بیچاره من چه بخت بدی در انتظار تو و مردم هم حرف برادر بزرگتر رو باور کردن اما از اونجایی که هیچ چیز از خداوند پنهون نمیشه این عمل زشت برادر بزرگتر هم برمراه شد سالها بعد چوپونی و همراه گلش از روی پل عبور میکرد اون در زیر پل استخون سفید کوچکی رو دید که روی زمین افتاده بود با خودش گفت آه این استخون به درد دهنی میخوره آره مناسب این کاره بعد استخون سفید رو برداشت و چند دقیقه بعد با اون سازدهنی خوبی ساخت و وقتی که برای اولین بار در سازدهنی دمید با شگفتی و تعجب شنید که استخون به صدا در اومد و آواز سرداد آه ای دوستی که در استخانم میدمی با استخانی که دیریز کنار رودخونه افتاده ساز میزنی. برادر نابکارم به خاطر گرازی جانم رو گرفت. بعد دختر زیبای پادشاه رو به همسری گرفت. شپون با ناباوری گفت. آ چه سازدهنی عجیبی آواز می خونه. بعد در حالی که سازدهنی رو خوب برانداز می‌کرد گفت. باید باید این سازدهنی رو نزد پادشاه ببرم. چوپون به طرف قصر پادشاه برا چوپان به قصر پادشاه رسید و به نگهبانان قصر گفت من با پادشاه کار مهمی دارم و اجازه ورود می خوام. نگهبان ها به نزد پادشاه رفتند و به پادشاه اعلام کردند که چوپانی با شما کار مهمی داره پادشاه با تعجب چوپان رو به حضور پذیرفت چوپان به محض ورود تعظیم کرد و بدون مقدمه در سازدهنی خودش تمید و استخون به صدا در اومد که آه ای دوستی که در استخانم میدمی با استخانی که دیریست کنار رود افتاده ساز میزنی برادر نابکارم به خاطر گرازی جانم را گرفت بعد دختر زیبای شاه را به همسری گرفت با شنیدن این آواز پادشاه چهره در هم کشید و بعد از مکسی کتا گفت ای چپون این سازدهنی رو از کجا آوردی؟ چوپان تمام ماجرا رو برای پادشاه تعریف کرد پادشاه که پی به واقعیت ماجرا برده بود دستور داد زمین زیر پل رو بکنند و با کندن زمین اسکلت برادر کوچیکتر پیدا شد برادر بزرگتر دیگه نمیتونست عمل زشتش رو انکار کنه به دستور پادشاه اونو در کیسه انداخته در کیسه رو دوختن و توی آب رودخونه انداختن و غرقش گردند بعد مردم شهر و سخونه های برادر کوچکتر رو در مغبره زیبایی در قبرستان کلیسا به خاک سپرد آلمانیه افثانه آلمانی استخان آوازخون رو از مجموعه افسانه های برادران فولکروشناس و زبانشناس آلمانی یعنی برادران گریم براتون نرخ کردم هر افسانی پیام و سخنی پر از حکمت برای شنوندگان و خانندگانش داره که واقعا ارزشمنده. امیدواریم در هر کجای ایران بزرگ و عزیز که هستید لحظات و خوب و آرام بخشی در انتظارتون باشه این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار اسخر زعماری تغییر کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه ای دیگر بدر